دست در حلقی آن زلف دوتا نتوان کرد تکی بر عهد تو و باد سبا نتوان کرد آن چه است من در طلبت بن مایم این قدر هست که تغییر غذا نتوان کرد دامن دوست به صد خون دل افتاد به دست به فسوسی که کند خصب رها نتوان کرد آرزش را به مثل ماه فلک نتوان گفت نسبت دوست به هر بیسه رو پا نتوان کرد سر بالای منانگه که در آید به سما چه محل جامعه جان را که قبا نتوان کرد نظر پاک تواند رو خجانان دیدند که در آین نظر جزب به صفا نتوان کرد مشکل عشق نه در حوصله دانش ماست حل این نکته بدین فکر خطا نتوان کرد غیرتم کشت که محبوب جهانی دیکن روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد من چه گویم که ترا نازکیه تب الاتیف تا به حدیست حد که آهسته دعا نتوان که به جزب روی تو مهراب دل حافظ نیست تاعت غیر تو در مذهب ما نتوان که